ابراهیم گفت پس ای فرستادگان خدا کار و مأموریت شما چیست؟ قالوا اینا ارسلنا الى قوم مجرمین فرشتگان گفتند بی گمان ما به سوی قومی مجرم و گناهکار فرستاده شده ایم لنرسل علیهم حجارت من طین تا سنگ هایی از گل بر سر آنها فرود آوریم مسومتا عند سنگ هایی که نزد پروردگارت برای اصرافکاران نشانگزاری شده است فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس کسانی از مؤمنان را که در آن شهرهای قاملوت بودند پیش از نزول عذاب بیرون آوردین فما وجدنا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ من الْمُسْلِمِينَ و جز یک خانه از مسلمانان در آن شهرها نیافتیم و, ترکنا فيها آیت و در آن شهرهای ویران شده نشانی روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند بر جای گذاشتیم وفی مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ و نیز در داستان موسی نشانه و عبرتی است هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادین فتولا بی وقال ساحر او مجنون پس فرآن با قدرت ولشکر خیش روی گرداند و گفت این مرد جادوگر یا دیوانه است فأخذناه وجنوده في اليم و جنوده فنبذناهم فی الیم و آنگاه او و ولشکریانش را گرفتیم و آنان را به دریا افکندیم در حالی که او سزاوار سرزنش بود وفی ال و نیز در داستان قوم عاد نشانه است هنگامی که تند بادی بی خیر و برکت بر آنان فرستادیم، ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم طوند بادی که بر هیچ چیز نمیگذشت مگر اینکه آن را مانند استخان پوسیده میگرداند وافى ثمود اذ لهم تمتعوا حتى حیل. و هم چون این در داستان قوم سمود نشانه ای است هنگامی که به آنها گفته شد مدتی کوتاه از زندگی بهرهمند شوید که تنها سه روز فرصت دارید فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ ینظرون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 و نتوانستند برای خود انتقام بگیرند و قوم نوح من قبل اینهم کانو قوما فاسقین و قوم نوح را پیش از این هلاک نمودیم زیرا آنها قومی بدکار و فاسق بودند وَالْسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَمَا آسمان را با قوت و قدرت عظیم بنا کردیم و بی گمان بر آن وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ و زمین را گستردیم پس چنیک گستراننده ای هستیم و من کلی شیئن خلقنا زوجین لعلكم تذکرون و از هر چیز جفت آفریدیم شاید شما پند گیرید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 همچنین بر پیشینیان آنها هیچ پیام بری نیامد مگر اینکه گفتند او جادوگر یا دیوانه است بل هم قوم آیا آنها یکدیگر را به آن سفارش کرده بودند بلکه آنها مردمی طغیانگر هستند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 زیرا که بیگمان پند و تذکر مؤمنان را سود می بخشد و ما خلقت الجن والانس إلا لیاعبدون و من جن و انس را نیا فریده مگر برای این که مرا عبادت کنند ما ارید منهم من و ما هرگز از آنها روزی نمیخواهم و نمیخواهم که مرا اطعام دهند الله هو الرزاق ذو القوة المتين بیگمان خداونده خداوند است که روزی دهنده است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 و سوگند به بیت المأمور و السقف المرفوع و به برف شده و البحر المسجور و دریای مملو این عذاب ربک لواقع بیگمان عذاب پروردگارت واقع شدنیست ما لهو من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 فویل یومئذ للمکذبین پس در آن روز وای بر تقزیب کنندگان الذین هم فی خوضی العبون کسانی که در سخنان و کارهای باطل به بازی مشغولند يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَا روزیك آنها را به زور به سوی آتش جهنم می‌رانند هذه النار التي كنتم بها تكذبون خازنان جهنم به آنها میگویند، این همان آتشی است که شما آن را تکذیب می کردید. اف آیا این آتش و عذاب جادوست یا شما نمی بینید؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیكم إنما تجزون ما كنتم تعملون به آن درایید و بسوزید پس صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است تنها به کیفر آنچه انجام انجام میدادید جزا داده میشوید. این الملتقین فی جنات و نعیم در باغهای بهشت و نعمتهای فراوان هستند.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 كل واش رامنی انبیمک توم تعملون <ibles> به آنها گفته میش بخورید و بیاشامید گارایتان باد به خاطر آنچه که در دنیا انجام میدادید متکی این على سروریم نصفوف.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 الحقنا وما آلتناهم من عملهم من كل و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز در ایمان از آنان پیروی کردهاند. فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق می‌کنین و از عمل آنها چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو دستاورد و اعمال خویش است و امددناهم بفاكهه و لحم مما یشتهون پیوسته از هر میوه و گوشتی که بخواهند در اختیارشان میگذاریم يتنازعون فيها, فيها ولا در آنجا از یک دیگر جام شراب تهور میگیرند که نبی هودگویی در آن است و نه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم مكنون وهموار پسرانی همچون مروارید درون صدف برای خدمت آنان برگردشان میچرخند واقبل بعضهم على بعض يتساءلون به هشتیان رو به یک دیگر می کنند و از حال گذشته یک دیگر سوال مینمایند قالوا اننا قبل میگویند ما پیش از این در میان خانواده خود از عذاب الهی ترسان بودیم فمن الله علينا و عذاب السموم پس خداوند بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم و کشندی جهنم حفظ کرد اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُونَ <سؤال> همانا ما پیش از این او را میخاندیم بیگمان اونی کار مهربان است فذکر فما انت بی نعمت ربی ولا مجنون پس ای پیامبر پند و ده که تو به فضل و نعمت پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی ام يقولون نتربص ریب آیا میگویند او شاعری است که در باری او منتظر حوادث روزگاریم و مرگش را انتظار میکشیم قلت ربص فان معکم من المتربصین بگو انتظار بکشید که من نیز با شما انتظار می کشم ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طارون آیا عقلهایشان آنها را به این خیالات باطل دستور می دهد یا آنها گروهی تویانگرند؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون آیا می گویند محمد آن را بافته و به خدا نسبت داده است؟ خیر چون نیست بلکه ایمان نمی آورند. فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إن كَانُوا صَابِقِينَ پس اگر راست گویند باید سخنی مانند آن بیاورند أم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنْ هُمُ الْخَالِقُونَ آیا آنها از هیچ و بدون آفریننده آفریده شده اند یا خود خالق خیشند ام خلق السماوات والأرض بل لا یوقنون آیا آنها آسمانها و زمین را آفریده اند خیر بلکه آنها یقین نمی کنند هم خزائن رب که هم المسیطرون آیا خزائن پروردگارت نزد آنهاست؟ یا آنها بر همه چیز تسلط دارند؟ ام لهم سلمون یستمعون فیه فَلْ يَأْتِ مستمعهم بسلطان مبين. آیا نردبانی دارند که از آن به آسمانها بالا می روند و از آن اسرار وحی را می شنوند؟ پس باید شنوندشان بر این ادعا دلیل روشنی بیاورد اَمْ له البنات ولكم البنون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 أم عندهم الغیب فهم یکتبون آیا اسرار غیب نزد آنهاست پس آنان از آن می ام یریدون کیده فالذین هم المکیدون آیا نیرنگ و نقشه پلیدی برای تو میخواهند بکشند؟ پس کسانی که کافر شدند خودشان گرفتار نیرنگند ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما عم آیا آنها معبودی غیر الله دارند پاک و منظه است خداوند از آنچه شریک او قرار میدهند. و ای راک من السماء ساقطی یقول سحاب مرکون و اگر مشکان پاری از آسمان برای عذابشان افتاده ببینند میگویند این ابری متراکم است.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 آنگاه فرو آمد و نزدیک تر شد فکان قاب قوسین او پس فاصله او با پیام بر به قدر دو کمان یا کم بود فأوحا أوحا آنگاه خداوند آنچه را باید می کرد به بند اش نمود ما كذب الفؤاد ما راى قلب پيامبر آن چه را دید دروغ نگفت افت ما ما آیا با او درباره آنچه می بیند مجادله ميکنيد ولقد رآه رااه نزله اخرى و به راستی بار دیگر نیز او را دید؟ نزد صدرت المنتهى نزد صدرت المنتهى عندها جنت المعوى که جنت المعوى نزد آن درخت است این یغش السدرت ما یغشا چون درخت صدره را چیزی پوشاند ما زاغ البصر و ما چشم پیام بر خطا نکرد و از حد در نگذشت لقد را راستی او پار از نشان های بزرگ پروردگارش را دید. فر آیا لات و عضا را دید ومنات الثالثة الخری و منات بت سومی بیأرزش را الكم الذكر وله آیا شما را پسر باشد و او را دختر تلك إذا قسمة ضیزا در این صورت این تقسیمی غیر عادلانه است إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها تبعون إلا الظن وما ولقد جاءهم من ربهم این إ چیزی جز نام چیزی هایی نیست که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید و خداوند دلیلی بر صدق مدعای شما نازل نکرده است. آنها جز از گمانهای بد و بیاساس و هوای نفس پیروی نمی کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است املی ما تمنا آیا انسان هرچه آرزو کند برایش میسر است فلله الاخره والاوله از آخرت و دنیا از آن خداست و من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام دختران نام گذاری می کنند و ما لهم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 فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پس ای پیامبر از کسی که از ذکر ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نخواهد اعراض کن ذلک مبلغهم من العلم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 و کسانی را کنیکو کاری کردند با بهشت نیکو پاداش دهد الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَّمَنْ إن ربك واسع الْمَغْفِرَةِ همان کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت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 آیا نزد او علم غیب است پس او همه چیز را می بیند؟ ام لم ينبع بما في صحف یا از آنچه در صحیفه های موسا بوده آگاه نشده است؟ و ابراهیم الذی وفاه و نیز آنچه در صحیفه های ابراهیم همان کسی که وفادار بود؟ اللاتذر واسره وزر ازره که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و الیس للانس الا ما سعى و اینکه برای انسان ای جز آنچه سعی کرده نیست و ان سعيه و اینکه به زودی حاصل تلاش و سعی او دیده خواهد شد ثم سپس او به پاداشی تمام و کافی پاداش داده خواهد شد و الى ربك و یقیناً بازگشت همه امور به سوی پروردگار توست و آن‌هُ هو اضحك و ابکه، او خنداند و گریاند. و آن‌هُ هو آمات و احیان، و اینک او میراند و زندگ کرد. و انه خلق الزوجين الذكر والانثى و ان او دو جفت نر و ماده آفرید من نطفه اذا تمنى از نطفه ای چون در رحم ریخته شود و ان علیهم نشئه الاخرى و ان پدید آوردن بار دیگر بر عهده اوست و ا ن ن و اینکه و ا غ ن و سرمایه بخشید ن ا و ا ن و س ت ك ب و ان که اوس ك نخستین را هلاك کرد و فما أبقا. و نیز سمود را هلاك کرد پس کسی را باقی نگذاشت و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى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 ای پس ای انسان ناسپاس به کدام یک از نعمتهای پروردگارت شکداری هذا من این پیام بر هشدار دهنده ای از قبیله هشتار دهندگان پیشین است اذفت الازفه قیامت نزدیک شده است ليس لها من دون الله كاشفه و هیچ کس جز خدا آشکارش نکند اف من هذا الحديث تعجبون آیا از این سخن تعجب میکنید و تضحکون و لا تبکون و میخندید و نمیگرید و انتم سامدون و شما هموار در غفلت و هوسرانی هستید فسجدو لله و عبدو. پس همه برای خدا سجد کنید و او را بپرستید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان اقتربت الساعت و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت وئی رؤایتی یعرض و سحر مستمر. و اگر کافران مؤجزهایی ببینند، روی بگردانند و گویند، این جادوی قویست. و کذب و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 و راستی برای آنان به اندازه کافی خبرهایی آمده است که از گناهان و بدیها باز می دارد فما این آیات حکمت و دانش تمام و رساست پس برای افراد جاهل و لجوج هشتارها سودی نمی بخشد. فتولا عنهم ی اوماید دائل شيء شیء ک بنابر این ای پیام بر از آنها روی بگردان تا آن روزی که دعوت کنند ای مردم را به امر وحشتناکی دعوت کند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 يقول الكافعون هذا يوم عث و به سوی دعوت کننده می شتاباند میگویند این روز سختی است كذبت قابل همقوموح فكذبوا بدنا وقال مجنون از دوج پیش از آنها قوم نوح تزیب کرده بودند.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 ففتحنا ابواب السماء بمائی من همیر. آنگاه درهای آسمان را با آبی فراوان و فرو ریزنده گشودیم و فجرن الارض عیونا فالتقل ماء علی قد و از زمین چشمه هایی جوشاندیم و جاری نمودیم پس این دو آب آسمان و زمین برای امری که مقدر شده بود با هم درامیختند و حملناه علی ذات الواح و دسر و او را بر مرکبی ساخته شده از تخته و میخ سوار کردیم تجری بی جزاء لی زیر نظر و حفاظت ما روان بود کیفری بود برای کسانی که کافر شده بودند ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. و به راستی ما این ماجره را به عنوان نشانهای بر جای گذاشتیم پس آیا کسی هست که پند گیرد فکیف کان پس بنگرید عذاب و های من چگونه بود ولقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر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 ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ماتت باد سرد وحشتناكي در روزی شوم طولانی بران ها فرستادیم تنزعنا كانهم اعجاز نخلن مقعر که مردم را از جا برمیکند گویی که آنها تنهای نخل ری شکن شده اند فکیف کان و نذر پس بنگرید عذاب و هشدارهای من چگونه بود ولقد یسرن القرآن فهل من مدکر و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود کذبت ثمود بنذ قوم ثمود نیز هشدار دهندگان را تکذیب کردند فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه اننا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 خیر بلکه او دروغگوی خود پسنده است من الكذاب الاشر فردا خواهند دانست چه کسی دروغگوی خود پسند است اینا مرسلن ناقت فتنتا لهم فارتقبهم و بیگمان ما ماده دشتر را برای آزمایش آنها می فرستین. پس ای صالح منتظر پایان کارشان باش و صبر پیشه کن و ان الماء قسمت بینهم کل شربیم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 فکیف کان عذابی و پس بنگرید عذاب و هشتارهای من چگونه بود اِنَّا ارسلنا عليهم صَيْحَةً واحدة فَكَانُوْ كهشيم بیگمان ما یک بر برانها فرستادیم پس همگی به صورت گیاه خشک خورد شده ای در آمدند و, لقد فهل من و یقینا ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم پس آیا کسی هست که متذکر شود کذبت قوم لوط بین نذر قوم لوط هشدار دهندگان را تکذیب کرده اند ایننا ارسلنا عليهم حاصبا الا لوط نجیناهم بسحر پیگمان ماشنباد تندی بر آنها فرستادیم و همه گی را هلاک کردیم جز خاندان لوط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 و براستی لوت آنها را از عقوبت سخت ما بین داد پس آنها با هشدارها مجادل و ستیز کردند ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعیونهم فذوقو عذابی و نذر و به راستی آنها از او خواستند که مهمانش را برای کار زیش در اختیارشان بگذارد پس ما دیدگانشان را کور کردیم و گفتیم پس تعم عذاب مرا و تعم هشدارهای مرا بچشید ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر و یقینا صبحگاهان عذابی پایدار آنها را فرو گرفت و هلاک کرد فذوقو عذابی و نذر. و گفتیم پس تعم عذاب مرا و تعم های مرا بچشید ولقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر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 کذبو بی كلها کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر آنها همه آیات و معجزات ما را تقذیب کردند پس ما آنها را گرفتیم گرفتن پیروزمندی توانا اکفارکم خیرم من اولائیکم ام في الزبر ای قریش آیا کفار شما از آنها بهترند یا برای شما امان نامعی در کتاب های آسمانی پیشین است ام یقولون نحن جميع منتصیر یا میگویند ما جماعتی نیرومند و پیروزیم زیهزمو الجمع الدبر. به زودی آن جمع شکست میخورد و پشت میکنند و پا به فرار میگذارند. بل بلکه قیامت بعدگاه آنهاست سختر و قیامت سختتر و تلخ‌تر است. این المجرمین فی ضلال و سرف بیگمان گناهکاران در گمراهی و دیوانگی هستند. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوق مس سقر روزی که بر چهره هایشان در آتش جهنم کشیده میشوند، و به آنها گفته می شود تعم آتش دوزخ را بچشید اینا كل شیئن خلقناه بقدر بیگمان ما همه چیز را به اندازه آفریدیم و ما امرنا الا واحدتون کلمحی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 وكل شیء فعلوه فی الزبور و هر چیزی را که انجام دادند در نامهای اعمالشان ثبت است و كل صغير وكبير مستتر و هر کار کوچک و بزرگ نوشته شده است این بیگمان پرخیزگاران در باقه ها و کنار نرهای بهشتی هستند في مقعد عند در جایگاه و مجلس صدق و راستی نزد فرمان مقتدر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 انسان را آفرید علمه البیان به او سخن گفتن آموخت الشمس و القمر بحسبان خورشید و ماه به حساب منظم و دقیقی در حرکت هند. والنجم و النجم و و گیاه و درخت برای او سجده می کنند و سماء رفعها و وضع المیزان و آسمان را برافراشت و میزان را قرار داد الا فی تا در میزان تجاوز نکنید و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. و وزن را بر اساس عادل بر دارید و میزان را کم نکنید. و وضعها للأنام. و زمین را برای مردمان قرار داد و گسترانید. فیها فاکهت و النخل ذات که در آن میبه ها و نخل های خوشدار است و الحبود العصف و و در آن دانی برگ دار که به صورت کاه در می آید و ریحان و گیاهان خوشبوست فبی ایی آلائی ربكما پس ای گروه انسوجن کدامین این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید خلق الانسان من صلصال کلفخار انسان را از گل خشکیده ای چون سفال آفرید و خالق الجن من مارج من نار و جن را از شعله ای از آتش خلق کرد فبی ایی آلاء ربکما تکذبان؟ پس ای گروه انس و جن کدام این پروردگارتان را تکزیب میکنید رب المشرقین و رب المغربین او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است، فبی ای پس ای گروه انسوجن جن کدام های نعمتهای پروردگارتان را تقزیب میکنید؟ دو دریای مختلف شور و شیرین را به جریان آورد در حالی که با یک دیگر برخورد میکنند بينهما برزخا لا يبغيان میان آن دو حائلی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و در هم نیا آمیزند فباي اي آلاء ربكما پس ای گروه انسوجن و این نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون میآید فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس ای گروه انس و جن نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید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 کدامین ناحمت های پروردگارتان را تکزیب می کنید کلوم <تصفيق> من هر چه بر روی آن است فانی شود و به وجه را بیک جللی و تنها روی پرورد گارزل جلال و گرامی توست که باقی میماند. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتم را تکذیب میکنید یَسْأَلُهُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از او سوال و درخواست نیاز می کنند و او هر روز در کاری است فبی ای الای ربکما پس ای گروه انسو جن نعمتهای های پروردگارتان را تکذیب می کنید سنفرغ لکم الثقلان ای دو گروه انسوجن به زودی به حساب شما می پردازین. فبی ربکما پس ای گروه انسوجن کدامی نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي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 یرسل علیکماش شواظ من نار و فلا تنتصران شعله های از آتش و دود بر شما جن و انس فرستاده می شود پس نمی توانید از خودتان دفاع کنید فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ای گروه انسوجن خدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید فاذا شققت السماء فكانت وردة كالدهان پس آنگاه که آسمان بشه شکافت پس همچون چرم و روغن مذاب سرخ گون شود بی ای الائ ربکما تکذبان پس ای گروه انسوجن خدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید لا انس پس در آن روز هیچ جن و انسی از گناهش پرسیده نشود چون با علامات چهرهشان شناخته میشوند فبي يوب بكما پس ای گروه انسوجن خدامین نعمتهای های پروردگارتان را تکذیب میکنید يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام گناهکاران از چهره شناخته میشوند پس آنها را با موی جلو سر و پاهایشان گرفته و به دوزخ افکنده می ای پس ای گروه انسوجن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید هادهی انم التي يكذب بها المجرمون. اين همان جهان است که گناهکاران آن را انکار می کردند. يطوفون بينها و بين حمين آن. امروز آنها در میان آن و آب سوزان می کردند. فبئي پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید ولی من خواف مقام جنتان. و برای کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بترسد دو باغ بهشتی است ای پس ای گروه جن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید افنان. آن دو باغ دارای درختان و شاخسارهای بسیار است، فَبِ اَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس ای گروه انسوجن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنی؟ فِی هی عینان تجریان در آن دو باغ دو چشمه روان است فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید بیما من کل فاكهه زوجان در آن دو باغ از هر میوه‌ای دو نوع است فبأي آلاء ربكما تكذبان پس ای گروه انسوجن خدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب کنید متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دان بهشتیان بر فرش هایی که آسترشان از دیبای زخیم است تکیه کرده اند و میوه آن دو باغ بهشتی در دست است فبای ای آلاء ربکما تکذبان. پس ای گروه انس جن کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ وین قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان در ان کا و باغ های بهشتی حوریانی دید فروهشت هستند که هیچ انسوجن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است فبای آلاء ربکما پس ای گروه انسوجن خدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید کأنهم النیاقوت والمرجان گویی آنها یاقود و مرجانند فبی ای آلاء ربکما تکذبان پس ای گروه انسو جن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیا پاداش نیکی جز نیکیست؟ فبی ای پس ای گروه انسوجن کدامین این نعمتهای پروردگارتان را تقذیب می کنید؟ و من دونه جنتان و غیر از آن دو باغ دو باغ بهشتی دیگر است فبی ای آلائی ربکما پس ای گروه انسو جن کدامی نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید آن دو باغ سرسبز که از شدت سبزی به سیاهی متمایل است فبی ای الائ ربکما پس ای گروه انسو جن خدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید فیهما عینان ضاختان در آن دو باقی بهشتی دو چشمی جوشان است ای ربکما پس ای گروه انسوجن کدامین نمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید. فیه ما فاکهت و نخل و در آن دو باغ میوه و نخل و انار است فبی ای آلائی ربکما تکذیبان پس ای گروه انسو جن کدام این نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید فیهن خیرات الحسان در آن کاخها و باقهای بهشتی زنانی نیک سیرت و نیک صورت هستند فبی ای پس ای گروه انس و جن کدامی نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟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 کدامی نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید متکین علی رفرف خضر و عبقری حسان در حالی که بهشتیان بر بالشهای سبز و فرشهای نیکو تکیه زده اند فبی ای ربکما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 به نام خداوند بخشنده مهربان اذا وقعت واقعه. هنگامی که واقعی قیامت واقع شود لیس لوقعته ذبه که در واقع شدنش هیچ دروغی نیست خافضة گروهی را خار کننده و گروهی را برافرازنده است إذا رجت الارض رجا هنگامی که زمین به شدت بلرزد و بست الجبال بسى و کوه ها در هم کوبیده و متلاشی شود فكانت هباء منثرا پس چون قبار پراکنده گردد و ازواجا ثلاثه و شما سه گروه شوید اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه پس گروه نخوست سعادتمندان دست راست سعادتمندان دست راست چه حال دارند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 اولئیک المقربون آنها مقربان هستند فی جنات نعین در باغهای پر نعمت بهش جای دارند ثلت من الاولین گروهی از پیشینیان وقليل من الاخرين و اندکی از آیندگان هستند على سرور موضونه بر تخت خای مرسع متكئين عليها متقابلين روبروی هم بر آن زده اند یطوف علیهم ولدان مخلدون نوجوانانی جاودان پیوسته بر گردشان می چرخند با قده ها و کوزه ها و و های از شرابی که در جوی ها جاری است لا يصدعون عنها ولا ينزفون شرابی که از آن نسردرد گیرند و نبیهوش شوند و فاکهت من ما یتخیرون و هر میوه ای که خود انتخاب کنند و لحم من ما و نیز گوشت پرنده از هر نوعی که میل داشته باشند وحور و, و همسرانی از هوریان سیاه چشم دارند که انث المكنون همچون مروارید پنهان در صدف جزا ان اینها پاداشی است در برابر آنچه که انجام میدادند لا یسمعون فيها لغوا ولا تاثیما در آن باق های بهشتی نه سخن لغو و می شنوند و نه گفتار گناه إلا قيلاً سلاماً سلاماً تنها یک سخن می سلام است سلام و اصحاب المینی ما اصحاب المین و اصحاب دست راست چه وزن و حالی دارند از هااب دسته راست. فی صدر در میان درختان صدر بیخار و طلح منضود و درختان موز پربار تو برتو و ظل مندود و سایه گسترده و مائم مسكوب و در کنار آبیجاری جاری و روان و فاکهت کثیره و میوهی فراوان لا مقطوعه ولا ممنوعه نه پایان پذیرت و نه کسی را از آن باز دارند و فروشیم و بسترهایی برافراشته شده و همسرانی گرانقدر این ان ش بیگمان ما آنها را به آفرینش نوینی آفریده ایم. فجعلناهن ابكار با آنها را دوشیزه قرار داده این عربا اتربا شوهر دوستان هم سن و سال ل همه اینها برای اصحاب دست راست است ثلت من الاولین که گروهی از پیشینیان یان و ثلت من الاخرین و ادهی از آیندگان هستند و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند از دست چپ فی سموم و حمین در میان باد سوزان و آب جوشان قرار دارند و و در سایه از دودهای متراکم و سیاه لبریدیمالکریم نخنک باشد و نخش این همکن و قابل ذلك متفی بیگمان آنها پیش از این در دنیا ناز پرورده بودند. و کانو یصرون علی الحنث العظیم و بر گناه بزرگ شرک اصرار می ورزیدند و کانو یقولون ا متنا و کنا ترابا و عظاما ا لمبعوثون و می گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخان شدیم آیا باز هم برانگیخته می شویم؟ او الاولون آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته میشوند قل ان الاولین والآخرین ای پیامبر بگو بیگمان گذشتگان و آیندگان لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ همگی در ماعد روزی مؤین گرد آورده می شوند ثُمَّ <تصفيق> اِنَّ سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده لآکلون من شجر من زقوم از درخت زقوم خواهید خورد فمال اون منها البطون پس شکم های خود را از آن پر می کنید فشاربون علیه من الحمیم انگاه بر آن از آب جوشان می نوشید فشاربون شرب الهیم پس مانند شتران مبتلا به بیماری آتش از آن آب جوشان می نوشید این پذیرائی آنها در روز قیامت است نحن فلولا تصدقون ما شما را آفریدیم پس چرا دوبار زنده شدن را تصدیق نمی کنید آیا ما نطف آیا نطفه ای را که در رحم همسرانتان میریزی دیدید انتم تخلقونه، ام نحن الخالقون آیا شما او را می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 علی أن نبدل امفعل کووانون شک ف مال تعلممون که <كلم> همانند شما را جایگزین کنیم و شما را به صورتی که آن را نمیدانید باز آفرینیم. وا قد تذكرون و یقینا شما آفرینش نخستین را دانسته پس چرا متذکر نمیشوید افرائتون ما تحرثون آیا چیزی را که میکاری أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آيا شما آن را ميرويانيد يا ما ميرويانيم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر بخواهیم آن را به کاه در هم کوبیده مبدل می کنیم که تعجب کنید این به راستی ما زیان کرده‌ایم بل نحن محرومون بلکه ما به کلی از محصول محروم شده ایم اف الماء الذی تشربون آیا آبی را كه مینوشید دیدهاید أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا شما آن را از عبر نازل کرده اید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 آیا آتشی را کمی افروزی دیدید؟ آن توم شجرتها شاتوم نحن المنشئون. آیا شما درخت آن را آفریدید <تصفيق> <تصفيق> یا ما آفریدیم؟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 و او را به پاکی یاد کن فلا اقسم بمواقع نجوم پس سوگند به جایگاه ستارگان و انه لقسم لو تعلمون عظیم و اگر بدانید این سوگندی بزرگ است اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ همانا این قرآنی کریم است في کتاب مکنون در کتاب پوشیده است لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ که جز پاکان به آن دست نمیزنند تنزل من رب العالمین سوی پروردگار جهانیان نازل شده است اف بهذا الحديث انتم مدهنون آیا شما نسبت به این کلام انکار کننده اید و تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. و به جای شکر روزی خود رازق را تکذیب می کنید. فلولا اذا بلغت الحلقون. پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسد؟ و أنتم تنظرون و شما در این هنگام نظار می کنید و نحن اقرب ایلیه منکم ولیکن لا تبصرون و ما از شما به او نزدیک هستیم ولی شما نمی بینید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 فَأَمَّا اِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اما اگر آن شخص از مقربان باشد فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نعیم پس در آسایش و ریحان و باغ بهشت پر نعمت است واما كان من و اما اگر از اصحاب راست باشد فسلام لك من اصحاب اليمين پس به او گفته می شود سلام بر تو باد که از اصحاب دست راست هستی واما ان كان من المكذبين الضالين اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه دست چپ باشد فنذلم من حمیم پس با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی میشود و تصلت جاحم و به آتش جهنم درآورده و سوزانده شود این هذا هو حق ق بیگمان این خبر حق یقین است فسبح باسم ربك العظيم پس ای پیامبر.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 و خداوند به آنچه میکنید بیناست له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به خداوند باز میگردد یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می و روز را در شب داخل می و او به آنچه در سینه هاست داناست آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير بخدا و برش يمان بياوريد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 وبراستي اگر باور دارید از شما يمان گرفته است هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم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 لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 من ذا الَّذی يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ عَجُرٌ كَرِيمٌ کیست که به خداوند قرز الحسنه دهد و در راه او انفاق نماید پس برای او دوچندانش کند و برای او پاداش ارجمندی است؟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 این کامیابی بزرگی است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 فضرب بینهم بسور له باب باطنه وظاهره من قبله العذاب روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند میگویند درنگی کنید و به ما بنگرید تا از نور شما پرتوی برگیریم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 ینادون هم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور منافقان آنها را صدا ميزنند آيا ما با شما نبوديم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 اَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آیا برای کسانی که ایمان آورده اند.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 ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون بدانید که خداوند زمین را بعد از مردنش زنده میکند به براستی ما آیات خود را برای شما به روشنی بیان کردیم باشد که شما اندیشه کنید إن <سطحون> المصصفّقين وال المصّقاتِ وَقرض اللهقرًا حسن يوبعف لهم يبف لهم وَلَهم أج كري بیگمان مردان و زنان صدقه دهنده و آنها که به خداوند قرضل حسنه دهند برایشان دوچدان میش. و برای آنها پاداش ارجمندی است وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ و الشهداء عند رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُلَّا إِكَاءَصَحَابُ الْجَحِيمِ فَكَسَانِكَ بِخُدَابَ وَحِيَامٍ بِرَانِشِ إِيمَانَ آبَرْدَانِد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 کمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 و خداوند دارای فضل عظیم است ما اصاب من مصیبته في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی الله یسیر هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتاب لوح محفوظ نوشته است مسلما این امر بر خداوند آسان است لیکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور این را بیان کردیم تا به خاطر آنچه از دستان رفته است افسوس نخورید و به آنچه خداوند به شما داده است شادمان نشوید و خداوند هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد همان کسانی که بخل میورزند و مردم را نیز به بخل فرمان میدهند. و هر کس که از فرمان الهی رویگردان گردان شود، پس بداند که خداوند بینیاز ستوده است. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 و تا خداوند معلوم بدارد چه کسی بنادید او و پیام پیامبرانش را یاری میکند بیگمان خداوند توانای پیروزمند است ولقد ارسلنا نوحا وابراهیم وجعلنا في ذلیتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون و به راستی ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم پس بعضی از آنها هدایت یافتند و بسیاری از آنها بدکار و فاسقند. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الينجيل إنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتو ورحمتو ورهبانية نبتدعوها ورهبانية نبتدعوها ما كتبناها عليهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمه ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم